Sitten aina kun olen täällä, niin aina Alkuperäinen kahden muutamakauden varjossa. Viisi viisi. B-muuttoslajia, niin näistä ajan, jossa. Jossa. Harjoitetaan uudelleen. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. Joo. و دوری حضرت دردی چیه؟ این سنت تر راولت و حضورت حدیث اینو الزمان شخصی متولد می شده مختصر و چکیده معتقداتش که شخصی در نزدیکی قیامت آخر الزمان متولد میشه از نسل و ضروریه پیمبر که همنام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم است و او قیام میکنه قیام میکنه و حکومت اسلامی رو تشکیل میده و بالاخره چه مردم طرفداری از او میکنند به انقلابی روی میده رخ میده و در تاریخ اگر ندهب کنید هم اشخاصی از بین اهل سنت و هم از بین اهل تشیع ادعای اه مهدمیت کرده اند ادعا کردن که ما مهدی هستیم ادعای مهدمیت کردن پس چی شد که در کتاب های اهل سنت این رمایت شده که در آخرین قرب قیامت آخر زمان شخصی متولد میشه یعنی هنوز تولد نیفته متولد نشده به این شکل که متولد بشه از زوری بندبت غیب بشه از دید پنهان بشه و در حالی که از دید پنهان هست نظارگر و مواظب بر اعمال انسان ها هست این مسائل در کتاب های و معتبر اهل سنت وجود نداره بلکه در آخر زمان تولد میشه متولد میشه هنیج به دنیا نیمده و مردم طرفدارش میشن و انقلاب صورت میگیره و حضرت عیسی هم میاد بعد شهاده میره به اسلام اونطور که در کتابها روایت شده شهاده میره به اسلام مسلمان میشه و پشت سر حضرت مهدی به نماز قیام میکنی یعنی پیش امام نمیشه په همار عیسی بلکه یکی از معمومین حضرت مهدی قرار میگیره شاید اینطوری بخواییم تلقی بکنیم که افتخار حضرت رسا که پشت سر یک شخص مسلمان از یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خاتم انبیاء که نماز بخونه حالا, حالا. اگر ما که مدر خداوند قادر نیست، قدرت نداره که یک شخصی رو به دنیا بیاره بعد غیر قائبش بکنه بعد که هر وقت خودش خواست بر نزدیت قیامت اون رو ظاهر بکنه و ظهور پیش بیاد منکر قدرت خداوند نیستیم نمیگیم که خداوند قادر نیست خداوند قدرت این رو داره همونطوری که چه؟ اصحاب کهف سی سال اون که در قرآن صراحتا مولد شده فسی و نه سال اصحاب کهف در خواب بودن و چه؟ بعد از سی سال بیدار شدند؟ این یک نمونه از قدرت خلابنده یا آزیر او که الگه على قلیت وهي هی على عروشها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 بعد خروج miran? ثم بعده سبع اورادات قال كم لبثت قال يا بسرده وحي بود يا بيك قال یا یک روز خوابیدم در خواب بودم بعد خداوند جواب داد قاله بله بستم ادعام یک روز نبوده نصف روز نبوده 100 سال بوده که شما در خواب بودید پس خداوند قادر هست که هر کاری رو انجام بده ولی نه از آیات و قرآن و نه احادیث و نه روایات و تاریخ هیچی وارد نشده به این شکل که یک شخصی به وجود بیاد به بی دنیا بیاد دوباره غیب بشه و در قرب قیامت ظهور بکنه در مرتقیدات اهل سنت نیست بلکه به اون شیوهی که اول گفتم اینو وارد شده و معالتی که استدلال بی به حضرت مهدی ربتش میرند اگر ما نگاه بکنیم تمامی آیات قرآن قبل و بعد آیات به هم دیگه رب داره ارتباط داره و این آیه که استدلال میکنند به آن که بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین و ما علیکم به این صحبت و سخن حضرت شعیب هست حضرت شعید اومد به قوم خودش گفت قیبشون چه بود؟ قیب قومش که در وزن و میزان و کیل کم میدادند و اینو للمطففین تطفیف میکردند کم میدادند منطقه بیشتر میگرفتند برای خودشون حضرت شعید اومد گفت این کار رو نکنید و میزان و ترازو رو به صورت کامل و تمام به بردم به خیلی نورزید، بخل نورزید در حالی که چه؟ ادامه صحبتش اینه بقیه الله خیر لکن اون باقی ایمانده چیزی که خداوند به شما میده از برکت و خیری که صداقت و درستی و ایمان برای شما میمونه اون چه؟ برای شما بهتره بقیت الله خیر لكم اینکون تو مؤمنین اگر واقعا ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشید پس از اول تا آخر آیات که آیه بقییت الله خیر لکم بسطی این آیات اومده ما اگر مطالبو در سوره هود هیچ ربطی به اعتقادات که درباره حضرت مهدی باشه نیست بلکه بس روی داستان حضرت شایی به قومش هست ما ربطی نداره و اگر ما این چنین مسئله ان قادر مهم بود ان باید وایاد الله معتقد و پایبند می شدیم خداوند حداقل حد یک جای قرآن می آورد که شما باید به فلان چیز معتقد باشید هم در که در قرآن اومده ارکان ایمان و ما یک خورب الله و ملاکتی و کتبی و رسولی و لیوم ال آخر فکت بالا بلّ و حتی ایمان به قضا و قدرم نیامده، بلکه در حدیث وارد شده. ما کسی در قرآن نمی‌بینه که خوراوان در آن آورده باشه که هر کس که به امامت مثلاً یا به این مسئله کافر شد، پس یه شده. این خلاصه‌ای بود از معتقدات اهل سنت و چکیده اون چیزی که افغانستان به آن معتقدانه باور دارم درباره حضرت مهدی و آخر الدعوه یعنی الحمد لله رب العالمین